صدقه دادن باعث نجات میشه مشکلات رو برطرف میکنن و این احالیس قبلا هم ورشوا خودین حدیث قار است نفر به غار رفتن حدیث مشهوری که میشه گفتین اینها صدقه دادن یکی از اونها صد دینار رو به دخترامیش بخشید نه صدقه داد الله رب العالمین اورا نجات داد و حدیث دیگر هم همون که قبلا گفتم داخل قار رفته و حدیث دیگر هم هست سه نفری که بیمار بودن یکی از اونها نابینا بود یکی از اونها کل بود موها ریخته بودن اکیم بیماری پوستی داشت فرشته آنبا اینها رو امتحان کرد هنگام امتحان گفت چی تو که مردم از من فاصله گرفتن تنفر دارن تمون دارم و زیبایی من گرفته همون از چی میخوایی مو زیبا سرشته دعا کر خدا بشموده مال چی یا گاو یا شطور طلب کرد بار الله داد. بعد پیش نفر بعدی را پوستی بیماری پوستی داشت که مردم تنفر داشتن با آسلی گرفتن و چی میخوایی؟ تو بدنی سالم پوستی خوب تا مردم از اون تنفر نکنه، دعا کرد خوب شد و حالا چی میخوایی؟ دعا به شطوری که از اینها رو طلب کرد الله بهش داد نفر سوم را اون هم کور بود الله به شفایش داد بهش مصفن داد یک ساعت اینها کار کردند. گاوه زیاد شطور زیاد گوزفنده زیاد دوباره همون فرشته اومد به شکلی فغیر فرشته به شکل انسان ظاهر میشه به شکلی فقیر آمد پیش نفر به اول رد تو با اللہ بخاطر همون خدایی که ترو شفا داد و به تو مال داد من در راه موندی هستم مسیرم دور هست بخونه نمیرستم به من ما ایک از این شطرار بده تا بتونم خونه برام گفت که نه اینا کار من هستن تلاش کردن زحمت کشیدن خدا کجا به من داده نمیدم من گفت اگر دروغ میگی الله رب العالمین تو را به صورت اول دار میگر داده رفت نفر بعدی همین چیز رو گفت اونا همین جواب رو داد گفت اگر دروغ میگی به حالت اول برگردی رفت پیش صاحب گسفنده بهش گفت خاطر اون خدای تو را شفا داد و این همین مال داد حالا مسیرم دور هست و خسته هستم روز فنگ دیده تا که راه باشه خونه برسم گفت که من فدای خدا باشم هرچی میخوای بگیر همه رو بگیر و برو از آن الله بودی گفت نه من فرشته هستم برای امتحان من الله اینها رو بیشتر بکره این صدقه یک صدقه این همی کارها رو انجام میده هم صدقات باعث رشد مال میشوند و مسیبت ها